أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما الى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحظ يقولون مع و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند چشم های آنها را میبینی که اشک ریزان میشود.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 و نطمع این مع القوم الصالحين. چرا به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم در حالی که آرزو داریم پروردگار ما را در زمره صالحان درآورد. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ پس خداوند به خاطر این سخن که گفتند به آنها باغ‌های از بهشت پاداش داد که از زیر درختان آن نرها ها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این است جزای نیکوکاران و, که و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل دوزخند يا ايها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیز عراق خدabond برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید همانا خداوند متجاوزان را دوست نمیدارد دارد و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذين انتم به مؤمنون و از چیزهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی داده است بخورید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 آشهد کشُق غذارید. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأعصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان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 إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبرضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منه؟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 و خدا را اطاعت کنید و نیز پیامبر را اطاعت کنید و از نافرمانی بر حذر باشید پس اگر روی گرداندید بدانید که بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست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 برایش عذاب دردناکی خواهد بود یا ایوها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم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 تا کیفر عمل خود را بچشد خداوند از آنچه چه گذشته درگذشت و هر کس که به این گناه بازگردد خدا از او انتقام میگیرد و خداوند نیرومند و انتقام است احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لكم و حرم علیکم صید البری ما دمتم حرما و الله الذی الیه توحشرون شکار دریا و تعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و کاربانیان بهرعی باشد و شکار بیابان تا موقعی که در احرام هستید بر شما حرام است و از خدای که به سوی او محشور می شوید بترسید. جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلائد ذالکن تعلمو أن الله يعلم ما في السماوات وما ما في الارض و ان الله بکل شئی علیم خدابند کعبه و ماه حرام و قربانی بینشان و قربانی نشاندار را وسیل برای اصفاری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 اعلموا ان الله شدید العقاب و الله غفور رحیم. بدانید که خداوند سخت کیفر است و خداوند آمرزنده مهربان است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 قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بگو ناپاک و پاک یکسان نیست و اگرچه کثرت ناپاک هاتو را به شیفتی اندازد از ای خیردمندان از خدا بترسید تا راستگار شوید یا ایوها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تو بدلكم تتس وائن تتسأل عن ح نزل القآ و تو بدلكم معف الله عن والله غافونحلم ای کسانی که ایمان آوردهد از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهگین کند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 گروهی قبل از شما از آن سؤال کردند سپس بدان کافر شدند ما جعل الله من بحیرت ولا سائبت ولا وصیلت ولا حام ولكن الذين كفروا و على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیام بیایید، گویند آنچه نیاکان من را بران یافته این ما را بس است، آیا اگر نیاکان آنها چیزی نمی و هدایت نیافته بودند، باز هم از آنها پیروی می کنند؟ يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينباكم بما كنتم تعملون اي كسانيك ايمان اورد عيد مراقب خود باشید اگر شما هدایت یافته باشید، گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمی رساند، بازگشت همین شما به سوی خداست، آنگاه شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می سازد. يا أيها الذين آمنوا شهادت بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم اثنان او آخران من غيركم این انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله سيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انما اذا من الاثمين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 فَإِنْ عُفِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّ أَثْمَنَ فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَلَيَانِ فَيُقْسِمَانَ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 ذلك أدناء يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أَوْ يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهذل قوم الفاسدين. این روش به آنکه گواهی را به گونه درستش ادا کنند نزدیک است. و یا بترسند که بعد از سوگندهای ورسه ساگندهایشان رد شود و از خدا بترسید و گوش فرادهید و بدانید که خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند.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 مارا علمی نیست بیگمان تو خود دانای رازهای نهانی إذ قال الله يا عیسى ابن مریم اذكر نعمتی علیك وعلى والدتك اذ ایدتك, بروح إذ أیدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 وَإِذ كَثَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ بِيَدِ بِيَاوَرْ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 از کسانی از آنها کافر شدند گفتند اینها جز جادوی آشکار چیزی دیگر نیست و ان اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا قالوا آمنا و اشهد مسلمون و بیاد آور زمانی را که به حواریون و فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم شده اذ قال الحواریون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قالت الله این کنتم و به آور چون حواریون گفتند ای ایسا پسر مریم آیا پروردگارت میتواند سفری از آسمان بر ما نازل کند ایسا در پاسخ گفت اگر مؤمن هستید از خدا بترسید قالوا نرید ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدین گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهای من آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفته ای و برآن از دواهان باشیم قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا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 و نشانه از تو و به ما روزیده که تو بهترین روزی دهندگانی ده ده قال الله اینی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإنی اعذبه عذاب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 ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فی نفسك إنك أنت علام الغیوب و بهیاد بیاور که خداوند میفرماید ای عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفتی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 فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علا کل شیئ شهید من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم به آنها گفتم خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم و چون مرا برگرفتی تو خودت مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی این تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزیز اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند و اگر آنها را بیامرزی تو نیرومند و حکیمی قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تاجرین من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا رب یغفر لهم ورض عن ذلك الفوز العظیم خداوند فرمود امروز روزی است که راستگویان راست به آنها سود می‌بخشد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 الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعتدون ستایش برای خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید و تاریکی‌ها و نور را پدید آورد و با این همه آنهایی ای که کافران شدند با پربردگار خیش دیگری را برابر می دارند هُوَ الَّذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا مِّن ثم ثُمَّ قَضَى وأجل وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ ثم أنتم انْتُمْ او کسی است که شما را از گل آفرید سپس مدتی را مقرر کرد و برای قیامت مدتی معین نزد اوست با این همه شک می‌کنید وهو هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سركم وجهركم و, جهركم و يعلم ما تكسبون. و اوست خداوند معبود در آسمانها و در زمین نهان شما و آشکار شما را میداند و آنچه چه بدهست میآورید میداند و ما من آیه من آیات ربهم الا كانوا عنها و هیچ نشانه ای از نشانهای پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه رویگردان میشوند لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فتنفىاتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون پرستی آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کرده اند پس به‌زودی خبر چیزهایی که به مسخره می گرفتند به آنها خواهد رسید الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکنناهم فِي <تصفيق> الْأَرْضِ ما لم نمکن لکم وَأَرْسَلْنَا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 و اگر کتابی بر کاغذ بر تو نازل کنیم که آن را با دست های خود لمس کنند قطعا کسانی که کافر شدند میگویند این جز جادوی آشکار نیست وقالوا لولا لو انزل ملك ولو انزلنا ملك لقضی الامر ثم لا ينظرون و گفتند چرا فرشته ای بر او نازل نشده است تا او را تصدیق کند و اگر فرشته ای می فرستادیم قطع به پایان می رسید سپس به آنها هیچ گونه مهلتی داده نمی شد به هلاک می شدند و جعلناه ملکا لجعلناه رجلا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 قبل که فحاق باللذین سخرون منهم ما کانو بهی استهزئون ای پیامبر به تحقیق پیامبران پیش از تو نیز مسخره شدند پس سزای آنچه مسخره اش بر سر تمسخر کنندگان فرود آمد قل الارض ثم كيف كان بگو در زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است قل ما فی السماوات والارض قُلِ الله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين كفروا انفسهم فهم لا يؤمنون بگو آن چه در آسمان ها و زمین است از آن کیست بگو از آن خداست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 و از آن اوست آنچه در شب و روز آرام گیرد و او شنوا داناست قل غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل بگو آیا غیر خدا را ولی و یاور گیرم خدایی که پدید آورنده آسمانها و زمین است، اوست که روزی میدهد و به او روزی نمیدهند بگو من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و فرمان یافته که از مشکان نباش قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ میترسم.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 ون يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخیر فهو على كل شيء قدیر اگر خداوند بخواهد زیانی به تو برساند هیچکس جز او نمیتواند آن را دعفع کند. و اگر خیری به تو رساند پس او بر همه چیز تواناست و هو القاهر فوقع عباده وهو حکیم الخبیر. و اوست که بر بندگان خود مسلط و چیره است و او حکیم آگاه است قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون كصاني كه به آنها کتاب داده این به خوبی او را میشناسند. همان گونه که فرزندان خود را میشناسند کسانی که به خیش زیان اند پس ایمان نمیآورند. آورند و من اظلم من ممن استرا علی الله کذبا او کذب بایاته انه لا یفلح الظالمون و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا آیاتش را تکذیب کند، به راستی ستمکاران رستگار نخواهند شد و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشراکو ت نقول الذينا اشوا تو عین شووااک اوکم الذي نکن توم تظرمون و روزی که همهی آنها را گرد آوریم سپس به کسانی که شرک وزیده اند میگویم آنها را شریک خدامی پند داشتید کجا هستند؟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 انظر کیف كذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون بنگر چگونه برخیشتن دروغ گفتند و آن دروغ هایی که ساخته بودند همه مح و نابود شد و من هم من يستمع إليك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 ولو لو ترائید وقفوا على النار فقالوا, فقالوا يا یا ليتنا نرد ولا نكذب بی ربنا ونكون من المؤمنین و اگر آنها را هنگامی که در برابر آتش نگه داشتند ببینی پس میگویند ای کاش بازگردانده می شدیم و آیات پروردگار من را تکزید نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردو لعادو لیمانوهو عنه و انهم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 و گفتند هیچ چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد ولو لو ترائی بوقفو علی ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فدوق العذاب بما کن. تکفرون. و اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان باز داشته شده اند ببینی می‌فرماید آیا این حق نیست گویند چرا قسم به پروردگارمان حق است می‌فرماید پس به سزای آنچه کفر می عذاب را بچشید قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون آنها كلقي لقای بردگار را تکذیب کردند قطعا زیان دیدند هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید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 قد نعلم لا ليحزنك الذی يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله يجحدون یقینا <سؤال> ما میدانیم که آنچه میگویند تو را غمگین میکند پس آنها در حقیقت تو را تكذیب نمیكنند بلکि این ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا عَلَى مَا كذبوا وَأُولُو حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ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 اخبار پیام بران به تو رسیده است و این کان کبر علیک اعراضهم استطعت ان تبتغی نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتیهم بآیه و شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تكونن من الجاهلین و اگر روی آنها بر تو گران آمده است پس اگر میتوانی نقبی در زمین یا نردبانی به آسمان بجوی آنگاه نشانی برای آنها بیاوری و اگر خدا بخواهد آنها را بر هدایت گرد می پس هرگز از نادانان ما باش اینما <التصفيق> یستجیب الذین يسمعون والموتا یبعثهم الله ثم إليه يرجعون تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند که گوش شنوا دارند و خداوند مردگان را در روز قیامت برمیانگیزد سپس به سوی او باز گردانده میشوند لولا نزل عل آیت من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولاكن اكثرهم لا يعلمون و گفتند چرا نشانی از طرف پروردگارش بر نازل نشده است بگو بی گمان خداوند قادر است که این نازل کند ولی بیشتر آنها نمیدانند. و ما می‌داند بته فی الأرض ولا طائر يطير بجنحيه إلا إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من ثم الى ربهم هیچ جان ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دوبال خود پرواز میکند مگر اینکه امتها ایمانند شما هستند ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم سپس به سوی پرباردگارشان محشور میگردند گردند وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِ نَا صُمٌ من فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يضلله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 اغیر الله تدعون ان كنتم صادقین بگو اگر راست میگویید به من خبر دهید اگر عذاب خدا به سراغ شما آید یا قیامت بر برپا شود آیا غیر از خدا را میخوانید بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون الیه إن شاء وتنسون ما تشركون نه بلکه تنها او را میخونید و اگر او بخواهد مشکلی را که برای آن او را خوانده اید برطرف میسازد و آنچه را شریک او قرار میدهید فراموش خواهید کرد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَمَا بِتَحْقِيقِ به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیام برانی فرستادیم چون نافرمانی کردند پس آنها را برنج و سختیها گرفتار ساختیم تا زاری کنند فلولا از جاءهم بأسنا تبرعون ولیکن قلوبهم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 فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابا كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ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 و لله العالمین پس قومی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصدف الآيات ثم هم هميصدف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 و ما نرسل المرسلین إلا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و ما پیام بران را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمیفرستیم پس هر کس که ایمان آورد و وخیشتن را اصلاح کند نه ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین میشوند و بما کانوا یفسقون و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به خاطر کفر و نافرمانیشان عذاب به آنان میرسد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 قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون بگو من نمیگویم خزاین خدا نزد من است و غیب نمیدانم و به شما نمیگویم من فرشته هستم جز از آن چه به من وحی می شود پیروی نمی کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسانند چرا نمی اندیشید الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 ما علیک من حسابهم من شیئ وما من حسابه کعليه من شیئ فتقردهم فتکون من الظالمین و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را میخوانند و خوشنودی او را میخواهند از خود دور مکن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 الله عليهم من الله و این چون این بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودین تا بگویند آیا اینها هستند که خدا از میان ما برانان مننت نهاده است؟ آیا خداوند به سپاس گذاران داناتر نیست؟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 قل لا اتبع قد ضللت وما من بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا میخوانید نهی شده ام بگو من از هوس شما پیروی میکنم کنم که اگر چنین کنم قطعاً گمراه شده ام از هدایت یافتگان نخاهم بود قل انی على بینت من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلی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 ولا حَبَّتٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقَبٍ وَلَا يَابِثٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ و کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی آنچه را در خشکی و در یاست و هیچ برگی از درختی نمیافتد مگر اینکه آن را میداند.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 ثُمَّ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى عَجَلٌ مُسَمَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و او است که روح شما را در شب میگیرد و آنچه در روز کرده اید میداند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 ويبصل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون و او بر بندگانش چیره است و نگهبانانی از فرشتگان بر شما میفرستد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا فرستادگان ما جانش را میگیرند و آنها کوتاهی نمیکنند ثم ردو الی الله مولاهم الحق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 من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفيه ان ان جانا من هذه لنكونا من من بگو چه کسی شما را از تاریخ های خوشکی و در یارهایی می بخشد او را با تزرع و زاری و در پنهانی میخوانید و میگویید اگر ما را از این خطرات و بلاها رهایی بخشد مسلما از شکر گذاران خواهیم بود قل الله ینجیكم منها و من کل کرب ثم انتم بگو خداوند شما را از اینها و از هر اندوهی میرهاند باز هم شما شرک می برزید.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 چگونه آیات را گوناگون بیان می کنیم تا آنان دریابند؟ و کذب بهی قومک و هو الحق قلست عليكم بوكيل قوم تو آن را تکذیب کردند در حالی که آن حق است. بگو من بر شما نگهبان نیستم. لكل نبئ مستقر تعلمون هر خبری سرانجام و قرارگاهی دارد و به زودی خواهی دانه است و اذا رأیت الذین یخوضون فی فأعرض عنهم حتى یخوضو في حديث غیره و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 با گروه ستمگران منشین و ما علی الذین يتقون من حسابهم من شیء ولكن ذکرا ولكن ذکرا لعلهم يتقون. و چیزی از حساب و گناه آنها بر احدی پرهیزگاران نیست، ولی برای پند دادن و یادآوری باشد، شاید که پرهیزگاری پیشه کنند. و الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم و, و الحیات الدنیا، وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تعدل الكل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حمين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 به خاطر اینکه کفر می‌ورزیدند بل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين کل ذی استهوده في الأرض حیران له أصحابی ادعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدال وأمرنا لنسلم لرب العالمين.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 راستی هدایت خداوند هدایت واقعی است و به ما امر شده که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم و ان اقیم الذي نماز را برپا دارید و از او بترسید تنها اوست که به سویش مشهور می‌شوید او هو خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصر عالم الغیب والشهاده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 و ایز قال ابراهیم لعبیه آذر اتتخذ اصنا من آلیه اینی اراک و ضلال مبین و بیاد آور هنگامی را که ابراهیم به پدرش آذر گفت آیا را به خدایی میگیری؟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 فلما جن علیه اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلین پس هنگامیكه تاریكی شب او را پوشانید ستارهای دید گفت این پروردگار من است اچان غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم فلما رأ القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم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 وَاذْ قومه قال وَأَجْدَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَادُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا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 و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده اید بترسم در حالی که شما نمی ترسید از آنکه چیزی را شریک خداوند قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است؟ پس اگر میدانید کدام یک از این دو دسته به ایمنی شایستهتر است لم. امانهم بظلم لهم الامن مهتدون آنان که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند ایمینی از آن آنهاست و آنها هدایت شدهگانند و تلک حجتنا آتینا ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربک حكيم علیم و حجت و دلایل ما بود که به در برابر قومش دادیم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 و من ذرزیته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون و نجز المحسنین و و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را هدایت کردیم و را نیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون را هدایت کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کُلُم من الصالحين. بنی زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را هدایت نمودیم همه الصالحان بودند و اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین فاسماعیل و یسع و یونس و, و لوط را هدایت کردیم و همه را بر جهانیان برتری دادیم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 هر آینه آنچه را که انجام داده بودند از اعمال نیک آنها نابود میشد. شد. الذين که الذین آتیناهم الکتاب والخکم والنبوه فا این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 اولائك الذين هدا الله فبهداهم قطب قل لا اسالكم عليه اجرا انه والا ذكر للعالمين آنها كثاني هستند که خداوند هدایتشان کرده از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 الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا و ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون و آنها خداوند را آنگونه که شایسته است اند که گفتند؟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 وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُوافِقُ أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ تُوافِقُ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 و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم و شگفت زده میشوی اگر ببینی هنگامی که این ستم کاران در سکرات مرگ فرو رفتند و فرشتگان قبض روح دست ها را گشوده و به آنان می گویند جانهایتان را بیرون آورید امروز عذاب خفتباری در برابر آنچه ناحق بر خدا می گفتید و نسبت به آیات او تکبر برزیدید خواهید دید وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا وما در معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم لقد تقطع بينكم عنكم ما كنتم تزعمون روز خداوند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 و آنچه را خدایان و حامیان خود میپنداشدید از شما دور و گم شده اند این الله فالق <تصفيق> الحب و یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذلكم الله فَأَنَّا تُعْفَكُونَ همانا خدا بند شکافنده دانه به هسته است زنده را از مرد خارج میسازد و مرد را از زنده بیرون میآورد. این است خدای شما پس چی بونه از حق منحرف میشوید. فالق فَالِقُ وجعل وَجَعَلَ الْلَيْلَ والشمس والقمر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 و هواللّذي جعل لكم نجوم لتهتدوا بها فی ظلماتِ البر و قد فصلنا الآيات لقومی احلمون. و او کسی است که سطحان را برای شما قرار داد تا در تاریخ‌های خشکی و دریا به وسیله آنها راهیابید به تحقیق ما آیات و نشانهای خود را برای گروهی که میدانند بیان داشتیم و هو الذی أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم یفقهون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 أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا, فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل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 انظروا إلى ثمره اذا اثمر و یمعه این فی ذالکم لقوم یؤمنون و او کسی است از آسمان آبی نازل کرد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 هنگامی که میوه داد به میوه آن و برسیدنش بنگرید که همانا در آن نشانه است برای گروهی که ایمان دارند و جعلو لله شرکاء الجن و خلقهم و له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالى عن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 و او چشم پارا در میابد و او باریک بین آگاه است. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن من عم وما أنا عليكم بحفيظ. ای پیامبر، به مشکین بگو.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 و این چونین آیات را گوناگون بیان می کنیم تا مبادا بگویند درس خانده ای و با این آیات را برای گروهی که می دانند بیان می کنیم اتبع ما اوخی الیک من رب لا اله الا هو عن از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وعی شده پیروی کن هیچ معبودی به حق جز نیست و از مشرکان روی بگردان و لو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکی و اگر خدا می شرک نمی و ما تو را آنان نگهبان قرار نداده ایم و تو کار سازشان نیستی ولا لا تسبو الذین یدعون من دون الله فیتبو الله عدوان بغیر علم کذالک زیننا سمت عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فیونبعهم بما كانوا يعملون و کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت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 قل انما الآیات عند الله وما یشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون و آنها به سختترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزهای برای آنان بیاید قط به آن ایمان میآورند بگو معجزات فقط نزد خداست و در اختیار من نیست و شما ای مؤمنان چه میدانید که هرگاه معجزه‌ای هم بیاید ایمان نمیآورند و نقلب افئدتهم و كما لم يؤمنوا به اول مرت و نذرهم فی طغیانهم و ما دلهایشان و دیدگانشان را دگرگون می همانگونی که از اول به آن ایمان نیاوردند و آنان را در سرکشیشان سرگردان رها میسازیم.